فصل هشتم همچنان که زمانی یک کتاب توصیف کرده است دسامبر همچون بهاری نامنتظر از راه رسید و مارتین نیز همراهان آمد بعد از نهار بود که با یک کیف زهوار در رفته و همچنان با همان کت چهار دگمه تمیز و تازه اتو شده در خانه ظاهر شد چیزی به من نگفت اما یک راست به دفتر پدرم رفت تا با او حرف بزند از ماه ژوئیه روز عروسی تعیین شده بود اما دو روز بعد از بازگشت مارتین در دسامبر پدرم نامادریم را به دفترش صدا کرد تا به او بگوید که عروسی روز دوشنبه برگزار خواهد شد آن روز شنبه بود لباس عروسی آماده بود مارتین هر روز خانه ما بود با پدرم حرف میزد و پدرم سر غذا نظرش را راجب او برای ما بیان میکرد. نامزدم را نمیشناختم. هیچ وقت با او تنها نبودم. هرچه نباشد مارتین با پدرم پیوند دوستی عمیق و بر داشت و پدرم طوری از او حرف میزد که انگار به جای من خودش میخواهد با او استواج کند. از نزدیک شدن روز عروسی. هیچ هیجانی احساس نمی کردم هنوز در آن ابر خاکستری سیر می کردم که مارتین شق و رق و خیالی همچنان که حرف میزد و دستهایش را تکان می داد و دگمه های کت چار دگمهش را باز و بسته می کرد از میانش به در اومد. روز یکشنبه شنبه ما نهار خورد نامادریم میز را طوری چیده بود که مارتین کنار پدرم بنشیند و سه صندلی بین من و او فاصله بود وقت نهار من و نامادریم خیلی کم حرف زدیم. پدرم و مارتین درباره مسائل شغلی گپ میزدند و من سه صندلی دور از او به مردی مینگریستم که قرار بود یک سال بعد پدر فرزند من بشود. به مردی که حتی دوستی سطحی و ظاهری نیز مرا به او پیوند نمیداد. شنبه شب لباس عروسی را توی اتاق خواب نامادریم امتحان کردم توی آینه تمیز و آراسته به نظر می رسیدم و انبوهی از کف قبار شکل که شبه مادرم را در خاطرم زنده می کرد در خود گرفته بود جلوی آینه به خودم گفتم این منم ایزابل. مثل عروسی لباس پوشیدم که می خواهد فردا صبح ازدواج کند و خودم را نمی شناختم احساس می کردم که خاطره مادر مردم بر من سنگینی می کند چند روز پیش در همین گوشه ممه از مادرم صحبت کرده بود می گفت پس از آنکه من به دنیا آمدم لباس عروسی تن مادرم کرده بودند و او را در تابوتی گذاشته بودند و که در آینه به خودم مینگریستم نگریستم مادرم را می دیدم که زیر خاک گور در انبوه پرچین و شکن نور و گرد و قباری زرد و متراکم پنهان شده است من بیرون از آینه بودم در اون آینه مادرم بود که بار دیگر زنده شده بود و به من نگاه می کرد و در آن حال دستهایش را از میان فضای منجمدش دراز کرده بود و می مرگ را که به اولین های تور عروسیم بند شده بود لمس کند و پشت سرم وسط اتاق خواه پدرم خیلی جدی و با حالتی مبهوت گفت با این لباس درست شبیه اوست آن شب اولین و آخرین و یگان نامه عاشقانم را دریافت کردم نامه را مارتین با مداد پشت برنامه سینما نوشته بود می گفت چون امشب نمیتوانم خودم را به موقان جا برسانم صبح فردا برای اعتراف خواهم رفت به سرهنگ بگو چیزی که در بارش صحبت میکردم تقریبا آماده است و به همین خاطر است که حالا نمیتوانم بیایم. نمیترسی که مارتین. با مزه بیخاصیت و آرگیان نامه در دهانم به اتاق خوابم رفتم و وقتی سه ساعت بعد با تکان نامادریم از خواب بیدار شدم باز هم دهانم تلخ بود. ساعت طول کشید تا کاملا بیدار شوم در لباس عروسی بار دیگر احساس کردم که انگار در سپید دمی و مرتوب هستم که بوی ماشک می‌دهند. دهانم خشک بود مثل موقعی که کسی عازم سفری باشد و بزاغ دهانش نتواند نان را به خیساند جشن عروسی از ساعت چهار در اتاق نشیمن شروع شده بود همهشان را می اما در آن هنگام به نظرم دگرگون و جدید می نمودند مردها لباس پشمی پوشیده بودند و زنها کلاه به سر داشتند و گرم صحبت بودند و بخار غلیظ و بیحال حال کلماتشان خانه را پر کرده بود کلیسا خلوت بود چون جوانی پارسا که به قربانگاه می رود در راه روی وسطی کلیسا پیش میرفتم رفتم که چند زن برگشتند و به من نگاه کردند طوله تنها کسی که در آن کابوس آشفته و خاموش واقعی می نمود لاغر و جدی از پله های محراب پایین آمد و با چهار حرکت دستهای تکییدش مرا به مارتین باگذاشت مارتین کنارم بود آرام و خندان همانطور که در ماتم شبانه کودک پالوکو مادو دیده بودمش اما حالا پیراهن یقه کوتاه پوشیده بود انگار زحمت زیادی کشیده بود تا نشانم دهد که حتی در روز عروسیش نیست، خیالید هر از روزهای معمولی است. آن روز صبح در خانه پس از آن که شرکت کنندگان در جشن عروسی صبحانه خوردن دو تا آرفات رایج را به زبان آوردند، شوهرم از خانه بیرون رفت و تا هنگام خواب نیم روز برنگشت. پدرم و نامادریم ظاهرا متوجه حال و روز من نبودند. آنها به روز اجازه داده بودند بیان که نظم امور را تغییر دهد بگذرد تا حال و هوای غیر آن دوشنبه حس نشود. لباس عروسی را از تنم درآوردم و آن را بخچه کردم و تای گنجه گذاشتم و در حالی که مادرم را به یاد می آوردم به خود گفتم دستکم این که نفاره ها می تواند کفنم باشد. داماد غیرواقعی ساعت دوی بعد از ظهر برگشت و گفت که نهار خورده است. همچنان که تماشایش می کردم به نظرم آمد که با آمدن او با آن موهای کوتاهش دسامر دیگر چندان هم ماه غمنگیزی نیست مارتین کنارم نشست و لحظه بیان که حرف بزنیم به همان حال ماندیم برای اولین بار از لحظه تولدم از اینکه شب شباغاز شود حراسان بودم حالتم هم چون این چیزی را نشان داده بود زیرا ناگهان به نظرم آمد که مارتین جان میگیرد. گیرد به شانم تکیه داد و پرسید به چی فکر می کنی؟ احساس کردم که چیزی در قلبم بیچ و تاب می مرا با لحنی خودمانی مورد خطاب قرار داده بود به جای نگاه کردم که در آن دسامبر چون گویی بزرگ و درخشان جلوگر بود ماهی بلورین و درخشان گفتم داشتم فکر می کردم که ما حالا فقط یک چیز کم داریم و آن باران است آخرین شبی که در ایوان با هم حرف زدیم، هوا از همیشه گرم تر بود. چند روز بعد بود که برای همیشه از مغازه سلمانی برگشت و خود را در اتاقش حبس کرد. اما در آن شب آخر توی ایوان که یکی از گرم ترین و سنگین ترین شبهایی بود که به یاد دارم او مثل بعضی مواقع تفاهم داشت. تنها چیزی که در میان آن کوره پهناور زنده مینمود آواز ملالاوره جیر ها بود که از اتش طبیعت برمیخواست و لرزش ظریف و نامحسوس و در عین حال سنجش ناپذیر اکلیل کوهی و سنبل هندی بود که در اوج آن ساعت متروک میگداخت. هر دو لحظه خاموش مندیم ماده چسمناک و غلیزی از بدن‌های من تراوش می‌کرد که عرق نبود بلکه بازمانده شلوول فاسد و تجزیه شده ی زنده بود گهگاه در آسمانی که در اثر درخشش تابستان کم ستاره می‌نمود، به ستاره نگاه می‌کرد. انگاه آنگاه خاموش می گویی خود را یک سر به جریان شب که بی نهایت زنده بود سپرده است چون این حالی داشتیم غرق فکر چهره به چهره او در صندلی چرمیش و من در صندلی گهوارهی. ناگهان همراه نسیم او را دیدم که سر غمگین و تنهایش را به طرف شانه چپش کچ کرده بود. به زندگیش فکر کردم به تنهاییش و به آشفتگی های روگی هول ناکش. به بیتفاوتی دردمندانه نگاهش به چشمانداز زندگی اندیشیدم. قبلا به سوی او کششی احساس میکردم که خود حاصل احساسات مبهمی بود که گاه درست مثل شخصیت او حالتی زد و نقیز و ناپایدار داشت اما در آن لحظه کمترین تردیدی نبود که او را عمیقاً دوست دارم فکر میکردم که من در درون خودم از آن نیروی مرموزی که از نخستین لحظه وادارم کرده بود که به او پناه بدهم پرده برداشتم و درد اتاق طاقت فرصاب و تاریکش را همچون زخمی سرگشوده حس می کردم می که زمانه افسرده و شکست خورده و مچالش کرده است و ناگهان با نگاهی تازه از جانب چشمان سخت و زرد و نافذش احساس یقین کردم که راز تنهایی پرپیچ و خمش از طریق زربان تند شب بر من آشکار شده است پیش از آن که فرصت فکر کردن داشته باشم که چرا چنین احساس می کنم، از او پرسیدم دکتر بگو ببینم به خدا اعتقاد داری؟ به من نگریست موهایش روی پیشانیش ریخت و نوعی خفقان درونی سراپایش را گداخت اما چهرش هنوز هیچ مایه ای از هیجان و پریشانی نشان نمیداد. وقتی صدای بریده بریده و خصت بارش به حال اول برگشت گفت اولین بار است که کسی چنین سوالی از من می کند. خودت چی دکتر؟ تا به حال چنین سوالی سآلی به نظر نه بی آمد نه علاقه مند. اوی فقط به شخص خودم علاقه داشت و حتی به سوال من یا حداقل انگیزش نیز توجهی نکرد. گفت گفتنش سخت است اما آیا همچو شبید تو را نمی آیا این احساس به تو دست نمیداد که کسی بزرگتر از همه ما در میان هظدارها قدم میزند و در گذر او همه چیز از جنبش افتاده و سرگشته است؟ آن وقت خاموش شد در آن سوی بوی گرم و زنده و تقریبا انسانی که از بوته یاسمنی که به یاد زن اولم کاشته بودم برمیخواست آواز جیر جیرک ها فضای گردآگرد ما را پر کرده بود. مردی بدون بود در دل شب قدم میزد. واقعاً فکر نمیکنم که این مسائل پریشانم کنند، سرحنگ. وکنون نیز آشفته می نمود مانند چیزهای دوروبر مانند اقلیل کوهی و سنبول هندی در معوای گداختشان. گفت: چیزی که مرا پریشان میکند و نگاهش را مستقیم و عبوسانه به چشمانم دوخت. چیزی که مرا آزرده میکند این است که کسی مثل شما این جربزه را دارد تا دا با چونین اطمینانی بگوید که از وجود آن مردی که شبها قدم میزند خبر دارد ما سعی می کنیم که روی را نجات بدهیم دکتر فرقش این است بانگاه از آنچه قصد گفتنش را داشتم فراتر رفتم گفتم تو چون منکر خدا هستی صدای راه رفتنش را نمی و او آرام و بی تشویش در آمد که باور کن سرنگ من منکر خدا نیستم من از تصور اینکه خدا هست درست همان اندازه آشفته می شدم که فکر کنم خدا نیست. به همین دلیل ترجیح میدم که در فکر نکنم. نمیدانم چرا؟ اما همین قدر این احساس را داشتم که این دقیقا همان چیزی است که میخواست در جواب من بگوید. به حرفهایش گوش دادم که همین الان بی اختیار به من میگفت گفت حرفهایی چنان روشن و سریح که آنها را در کتابی خونده است و فکر کردم خدا آرام و قرار از این مرد گرفته است از رخوت شب همچنان سر پا احساس می کردم که در قلب نگارستان درندشتی از شمایل های پیام برانه هستم در سمت دیگر نرده باغ کوچکی بود که آدلایدا و دخترم گلوگیاه در آن کاشته بودند. اکلیل کوهی از آن سبب میسوخت و میگداخت که آنها هر روز با مراقبت خیش تقویتش میکردند. تا در چنین شبهایی بخاری که از سوختن آن برمیخیزد خانه را فرا گیرد و خواب را آرام تر و تر کند. یاسمن نفس پایدارش را در هوا می و ما با آن بو بودیم زیرا با ایزابل همسال بود زیرا بویش به گونه ای تداوم مادر ایزابل بود جیرشیرک در حیات لابلای بوده ها بودند زیرا ما پس از سپری شدن فصل باران از وجین کردن علف های حرز غفلت کرده بودیم تنها چیز باور نکردنی و حیرتاور حضور وی در آنجا بود که با آن دست مال گنده و ارزان قیمت پیشانیش را که از عرق می درخشید پاک می کرد انگاه پس از یک مکس دیگر گفت دلم می‌خواهد بدانم چرا این شال را از من کردی سرهنگ گفتم یک دفعه به ذهنم رسید شاید پس از هفت سال می‌خواستم بدانم که مردی مثل تو در این بار چه فکر می کند. من هم پیشانیم را پاک می کردم. گفتم یا شاید نگران تنهاییت هستم در انتظار پاسخی بودم که بان نرسیدم او را روبروی خود می دیدم. هنوز غمگین و تنها بود به ما دو فکر می کردم به دیوانگی مردمش و به اسکناس های شعلور جشنها به طوفان برگ که هیچ سمت و سوی نداشت و بر فراز همه چیز بود و در مرداب غریزه و لذای زحمقانش همانجا که زوق و سلیقه دلخواهش را یافته بود قوطه میخورد به زندگی او پیش ازان که طوفان برگ درگیرد فکر میکردم و به زندگیش پس از طوفان برگ بطر ارزان قیمتش به کفشهای کهنه واکس زدهش و به شایعاتی که سایه وار دنبالش میکردند و او نادیدشان میگرفت. به او گفتم: «دکتر: تا تعلیج به فکر زن گرفتن افتادی؟ و پیش از آن که بتوانم سالم را تمام کنم. او به دادن جواب پرداخته بود. با همان شیوه معمول طولانی و کش دارش. تو دخترت را خیلی دوست داری اینطور نیست رنگ؟ در جوابش گفتم که طبیعی است. دنبال حرفش را گرفت. بسیار خوب. اما تو فرق می کنی. هیچ کس به تو حاضر نیست که همه کارهایش را خودش بکند. گاهی دیدم که خودت در خانه را لولا میزنی. در حالی که وقتی چند نفر برایت کار میکنند میتوانند این کار را انها انجام بدهند. این کار را دوست داری؟ فکر می کنم خوشحالیت در این است که با جعبه ابزار دور خانه راه بیفتی و دنبال چیزی بگردی که محکم رو به راهش کنی حتی از کسی که لولای رشگسته باشند تشکر می کنی سرهنگ از او به این دلیل تشکر می که به تو فرصت داده احساس رضایت کنی میان که بدانم از حرفش چه نتیجه‌ای می بگیرد به او گفتم این عادت است میگویند مادرم هم همین طور بوده. حرفهایم در او اثر گذاشته بود. حالتش آرام بود اما سخت مینمود. گفت: بسیار خوب عادت خوبی است وانگهی ارزانترین شادی و رضایتی است که می شناسم. برای همین است که یک چنین خانه ای داری و دخترت را همان که میخواستی بزرگ کرده ای. راستی چه خوب است که آدم؟ دختری مثل دختر تو داشته باشد هنوز هم نمیدانستم دانستم که از این همه حاشیه رفتن چه منظوری دارد اما با آنکه نمیدانستم، پرسیدم خودت چی دکتر؟ آیا تا به حال فکر نکرده ای که داشتن یک دختر چقدر خوب است؟ در آمد که من نه سرهنگ بلب خند زد اما بیدرنگ دوباره قیافه جدی به خود گرفت جای من مثل بچه های تو از آب در نمی آمدند. دیگر کمترین شکی نداشتم دکتر جدی حرف میزد و این جدی بودن و این حالت در نظرم وحشتناک بود با خود میاندیشیدم بیش از هر چیز از این نظر قابل ترحم است. فکر کردم احتیاج به حمایت دارد پرسیدم، آیا تا به حال در باره چیزی به گوشت خورده؟ جواب داد که نه گفتم، طوله کشیش بخش است اما پیش از آن که کشیش باشد با همه دوست است بهتر بودو را میشناخدی گفت، آه بله بله او هم بچه دارد مگر نه گفتم، الان منظورم به این نیست مردم چون خیلی به طول علاقه دارند درباره شایعه میسازند اما یک نکته هست دکتر طوله بیش از آن که ما فکر کنیم با زهد فروشی و مقدس نمایی فاصله دارد او مرد کاملی است که وظایفش را مثل یک مرد تمام عیار انجام میدهد. حالا دیگر با دقت و توجه گوش میداد ساکت بود حواسش را متمرکز کرده بود چشمان زرد و سختش را به چشمان من دوخته بود گفت چه خوب اینطور نیست؟ گفتم فکر می کنم که طوله در زمره قدیسان در خواهد آمد و در گفتن این حرف نیز صادق بودم تا به حال نزیر او را در ماکوندو ندیده بودیم هوایل مردم به او اعتماد نمی کردند چون از همین جا برخواسته بود چون پیرها یادشان مانده بود که او مثل دیگر پسر بچه ها برای شکار پرنده به صحرا میرفت در جنگ شرکت کرد درجه سرهنگی داشت و این مشکلی شده بود میدانی که مردم ما چه هستند هیچ احترامی برای کهنه سربااس ها غائل نیستند برای کشیژ ها هم, هم اینطور مادت نداشتیم که کسی برای من به جای اناجیل اربعه سالنامه نجومی بریستول بخواند. لبخند زد بایستی به نظرش عجیب آمده باشد چونان که روزهای اول برای ما هم بود گفت عجیب است اینطور نیست؟ طوله اینجوری است او خوش دارد که مردم را از طریق پدیده های جوی ارشاد کند مجذوب و شیفته طوفانهایی شده که کم و بیش منشأ الهی دارند هر یکشنبه شنبه آنها صحبت می و برای همین است که معزه بر پایه انجیل نیست بلکه بر اساس پیشگویی جبی سالنامی نجومی بریستول است حالا لبخند میزد و با حالتی سرزنده و دلپذیر گوش فرا داد. من هم احساس شخ کردم گفتم باز موضوع دیگری هم هست که برایت جالب است دکتر میدانی طوله چه مدت در ما کندو بوده؟ جواب داد که نه گفتم اتفاقا با تو درست در یک روز از راه رسید و عجیبتر اینکه اگر تو برادر بزرگتر داشتی مطمئنم که درست شبیه طوله از در میآمد البته از نظر جسمی حالا به نظر نمی آمد که به چیز دیگری فکر کند. از حالت جدیاش از تمرکز حواس و توجه مداومش حس کردم که حالا دیگر باید آنچه را که میخواستم مطرح کنم با او در میان بگذارم. گفتم: «خف خب از دکتر: سریع به طوله بزن بزنان وقت خودت متوجه می شوی که مسائل آنطور هم که تو می بینی نیستند. و او درآمد که: بله. تو لرا خواهد دی